بسم الله الرحمن الرحيم جلسات 2.1 فصل الاستنجاء الباب مقدمه جلسات 7.1 فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة استنجاء يعني طهري حاصل كردن طهارت گرفتن وآداب قضاء الحاجات آداب قضاء <كذيح> الحاجات دشوي رفتن استنجا واجب من البول و الغائطی استنجا واجب است از شاش و مدفوع پاکی حاصل کردن والأفضل و الافضل این استنجا بالاحجاری ثم گت بی اهاب المایی می فرماید افزل آنست با فضیلت تر و بهتر آن است که استنجا بکنه با سنگ ها سپس با آب ويجوز أن يقتصر على الماء وجائزة سكي فقط براب بر يعني فقط بر استنجا بكنات باكي حاصل بكنات أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل يا اكتفاه بكنات برسسسا كي ان محل بولو مدفور و باك بكونات. فإن أراد الاقتصار على أحدهما أجر خاص كي بر يكي أزيدوتها اكتفاه یعنی فقط سنگ استفاده کنه یا فقط آب استفاده کنه از میان این دوتا کدوم افضله فلما او افضلو آب افضل هست این که هر دوتا رو جمع کنه میگه افضل تر است. یعنی ابتدا سنگ سپس آب اینجوری میگه ولی اگه قرار باشه از میان این دوتا یکی رو انتخاب کنه آب افضل تر است. بله مسلما آب افضل تر است. پاکی بهتر حاصل میشه خوب الان هم که ورفای دنیا آواز شده و خدا را شکر آبه و یدتنی استقبال القبلتی و استدبارها فی الصحرائی و میگه شخصی که برای اس حاجت میره اجتناب میکنه از این که رو قبله بکنه و استدبارها و از این که پشتش رو قبله کنه فی الصحراء در صحراء و فضا، و یدتنی با البوله والغاية في الماء الراكت أداب بعد الغزائي هاجتينك بول غاية نمي كوند در آب يستاد در ماء الراكت اجتناب مي كوند از شاش و از مادفو در آب وتحت الشجرة المثمره وزيدي درخت سمردار بخاطر كالسمر هم يفتندو خراب لشد وفي الطريق در راه بالي ناسمه و از و الظل در سایه مردم و فوق و در سوراخ خود در این سورا ها حیوانات است که اون اذیت میشن یا خودش روستا اذیت میکنن <تصفح> وااتکل معلبولی وغاائقی و میگه دیگه ادب بعدی این است که سخن نگوید ببینین جملات به شکل خبری اومدن ولی به معنای انشایی هستند سخن نگوید عل البول والغائط بر شاش زمانی که شاش میکنه ادرار میکنه و این زمانی که مدفوع میکنه ولا يستقبل الشمس ولا القمر میگه روش رو به سمت خورشید و ماه نکند ولا يستدبرهما و پشتش را هم به سمت آنها نکند خب اینجا بحث استنجا تاموم میشه بحث رو نوارد سنت است برای کسی که میخواهد وارد بیت خلا بشه البته این شمس و قمر رو روش بحث هست کاری نداریم ما فقط رو حل میکنیم میگه میکن سنت از کسی که وارد بیت خلا بشه در خود مذهب امام شافعی بزرگوار رحمه الله که شخص بگه قبل از داخل شدن بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. این دعا رو بخونه معنیشم این است که پروردگارا از شیاطین نرو مادم توپناه میبرم و زمان که من خارج شد بگه غفرانک. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. سپاس پروردگاری را که ازیتی را از من دور کرد و مرا عافیت داد. پس این بود آداب قضاء حاجت. فصل اسباب الحدثی اسباب الحدث یا اون اسبابی که سبب حدث میشن سبب بی وضوعی و والذي ينقض الوضوء سته اشیاء اون چیزهایی که وضو رو باطل میکنن 6 چیز میباشند یک ما خرج من هر خارج من السبيلین هران چه که از دو راه خارج بشه حالا چه شاشی باشه چه مدفوعی باشه چه خونی باشه چه بادی باشه چی مذیه باشه چی ودی باشه مزی مذیه همون آبیه که مزیه همون آبیه که هنگام شهوت هنگام بازی کردن هنگام تحریک جنسیبی خارج میشه و ودی هم بعد از شاش خارج میشه خب دو و نوم و علا غیر حیعت المتمکن دومین چیزی که حضور رو باطل میکنه خواب اون هم خوابی که بر برحالتی باشد که متمکن نباشد متمکن چیه؟ تمکن چی، تمکنی اینه که جوری بر زمین بشینه که مقعدش به زمین چسبیده باشه چون ما میدونیم که خود نام فیزاتی سبب به نمیشه بلکه از اونجایی که شخصی که خوابه نمیدونه چی چیزی خارج میشه و از این مسائل سبب بیوزوی میشه لذا گفته اون خوابی که بر غیر حالت تمکن باشد اگر حالتش تمکن بود یعنی مقعد محکم بر زمین چسبیده بود اینجا دیگه وضوی لازم نمیشه غیر متمکن اینی که بین مقعد و زمین فاصله ای باشه یعنی مح... نچسبه خلاصه بر زمین و سه زوال العقلی به سکر نامرادل از بین رفتن عقل سبب بیوزویی میشه سبب حدث بیوضوی که با سکر باشه اون زوال عقل از بین رفتن عقل یعنی با چیزی که مست میکند سکر باشه اومرادوین یا به دلیل مریضی باشه در هر صورت عقل که از بین رفت مثل خواب وضوع واکر میشه چهار لمس الرجل المرأة الاجنبیت من غیر حائل چهاروین چیزی که در مذهب منشافی بزرگوار سبب به میشه دست زدن شخص المرأة بله اینجا المرأة مفعول به وسیله لمس که مصدر است لمس الرجل المرأة لمس بشه مصدر الرجل فائلش لفظاً مجروره ولی محلن مرفوعه المرأة مفعول به الاجنبیت صفتش دست زدن شخص زن اجنبی را بدون حائل بدون پرده پنجمین سبب از اسباب باطل کننده وضو مصو فرج الادمی به باطن الكف. دست زدن شرمگاه آدمی با باطن کف و شیش حلقه حلقت دبوری دست زدن حلقه دبور على جدید البته تبقی قول جدید امام شافعی رحمت الله علی. بس هم فرج آدمی با باطن کف وزور و باطل میکنه هم حلقه دبور با بله فصل موجب الغسل آن چیزی که غسل رو ایجاب میکنه ما اون چیزایی رو که سبب می میشدن خوندیم حالا اون چیزایی رو که موجب غسل میشن یعنی غسل رو ایجاب میکنن واجبش میکنن سبب غسل میشن اونا رو الان میخونیم والذي یوجب الغسل 6 تا اون چیزایی که واجب میکنن غسل رو 6 چیز میباشند یک التقاء الختانین التقای ختانین برخورد کردن دو چیز ختنه شده، منظور همون جمع دو انزال المنی خروج منی دومین دو آمل خروج منیه در التقای خطانین در جمع منی هم که خارج نشه وضو غسل واجب میشه دومی دو چیز انزال مدنی منی است. سه الموت سومین چیزی که سبب غسل میشه غسل واجب میکنه موت البته جز شهید و این ستا مشترک بودن بین زن و مرد یعنی جماع و انزال معنی و موت حالا سه چیز دیگه هست که مختص زنانن. و تختص بها بهن سه چیز دیگر هست که غسل و ایجاب میکنند مختص زنانند و هی اونا عبارتند از یک الحيض و النفاس و الولاده حیث اون خونی عادت آدت ماهانه میگن ماهانه برای زنان پیش میاد و النفاس نفاس اون خونیست که بعد از ولادت پیش میاد و الولاده و تولد فرزند فرزند که به دنیا اومد غسل بر زن واجب پس حیز و نفاس و بناداد فصلون فروز و الغسل و سننه غسل و سنتهای غسل و فرائز غسل الغسل ثلاثت در غسل سه چیز فرض است. فراز غسل سه چیز می باشد. یک، النیه، نیت دو، و ازالت النجاستی اگر على بدنه دوومین فرض در غسل اینه که نجاستو از بین ببره. اگر بر بدنش بود، اگر نجاستی بر بدنش چسبیده بود، اون از بین ببره. و سه، یعنی سومین فرض در غسل ایصال آب به جمعیت شعر و رساندن آب به تمام موها و پوست. آب کل بدن برسه پس اینا این ستا فرائز غسل بودن یعنی در غسل کردن این سه کار فرضه و سننه خمست و اشها سنت های غسل پنج چیز میباشند یک از تصمیه بسم الله گفتن و دو و وضوع قبله وضوع قبل از غسل سنته سه و امرار الید الالجسد جسد کشیدن دست بر جسد زمانی که خودشو میشوه دست و بر جسدش بکشه تا آب بهتر در پوست بره و چهار والموالات وال پی در پی غسل بکنه پنج و تقدیم و یوم نا علی در شستن بدنش اعضای راس رو مقدم بکنه بر اعضای چپ مثلا دست راسش رو ابتدا بشوه بر دست راس پای راس و پای چپ یا سمت راس بدن رو بر سمت چپ بدن خب فصل الاغتصالات و المسنونه در این فصل ما غسل های سنت ببین ما اون چیزایی که غسلو فرض میکردن رو خوندیم موجب غسل بود با انواعش بعدن خود اون چی که در غسل فرضه خوندیم اون چی که در غسل سنت خوندیم حالا اون غسلایی رو که غسل کردن های رو که سنت هم یعنی سنت انسان برای غسل بکنه رو میخونیم الاغتصالات المسنونة غسل های سنت و المسنونة سبع تا عشر غسل هم مذهب ایمان شافی غسل هایی که سنت هستند هفته تا غسل میباشند یک غسل الجمعه غسل, كر... غسل روز جمعه این سنته. گرچه برخی اصفقه واجب ولی ما این ها رو اشاره نمی چون بحث ما یعنی که اباره رو حل کنیم برای طلبه دو والعیدین غسل دو عید هم جو سنته یعنی غسل کردن برای دو اید سنته است سه الاستسقا برای نماز استسقا چهار والخصوف برای نماز خسوف برای خسوف پنج والکصوف برای کصوف شش الغسل من غسل الميت شش من غسل سنت اینه که کسی که میتو غسل کرده غسل براش سنته الغسل من غسل الميت غسل کردن از غسل میت هفت الکافر اذا اسلم کافر زمانی که اسلام میاره غسل براش سنته هشت والمجنون برای دیوانه دیوانه که به میاد نه والمغمى عليه بيهوش المجنون والمغمى عليه فسحشت براي ديوانه نوه براي شخصي كي بيهوش بوده إذا أفاقه زماني كي ديوانه بيهوش بياد وزماني كي بيهوش بياد ده الغسل عند الاحرام غسل حنقام إحرام يازح لدخول مكة براي داخل شدن در مكة غسل مستحبه دوازح وللوقوف بعرفة در وقوف در عرفة ماندن و توقف کردن در عرفه غسل و مسننت و سیزده للمبیت بمزدلفه شب گذراندن در مزدلفه هم غسل سنت چهارده لرمی الجمار الثلاث برای زدن جمار جم جم جم جم سگانه اون ستا جمارهی که روز نهر اونا رو با سنگ میزنن برای رمیشون برای سنگ زدنشون غسل هم سنت هست خانزه ولی طاف برای تواف کردن شانزه ولی سعی بین سفا و مروه هفته لدخول مدینه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم هفته من جایی که غسل سنتست یا هفته من کاری که غسل برای سنتست برای داخل شدنه مدینه الرسول صلی الله عليه و آله وسلم پس غسل برای جمعه دو اید استسقا خصوف کسوف و این هفته چیزی که نام بردیم سنت است تا اینجا کار کافی است